اصل اول. با نام و خدا دوستان سلام نوبت علاقهمندان افسانههای ایرانی است این افسانهها به شکهای گوناگون در ادبیات کهن ایران وجود داشتند و با روایتهای مختلف در همه اعثار به گوش مردمان سرزمین ما رسانده شدند البته گاهی کوتاه در حد یک صفحه و گاهی بلند در حد یک کتاب ولی آنچه مهم بوده و است پیامی است که در این ها وجود دارد و به نظر میرسد که در همه زمانها و برای همه مکانها قابلیت ارائه و انتشار را دارند پیامهایی که اغلب رندانه و پنهانی ارائه شدند. سرزمین ما از نظر حکایت و افسانه تمثیل و مقامه و داستان و قصه سرزمینی است پربار که همه محققان جهان بر آن گذاشتند. البته بیشتر افسانهها و ها در سرزمین های مختلف شباهت‌های با هم دارند و پیام‌هایشان ثابت است ولی آنچه که در ظاهر مشهود است شکل و فرم روایت آنهاست که در هر سرزمین بنا به سلیقه و زائقه مردمان آن سرزمین به صورتی خاص ارائه شدند. به هر حال شما عزیزان شش افسانه از متون کهن و مردمی سرزمینمان را با تنظیم رادیویی و ویرایش نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی می‌شنوید. آماده باشید برای شنیدن اولین افسانه انتخابی ما با عنوان کلاهی برای سلطان که امیدوارم از آن لذت ببرید سالها پیش و در روزگاران قدیم در شهری دور مرد قلقبازی زندگی میکرد که خرج و را از راه‌های مختلف بدست دست می‌آورد این آدم کار معلوم و مشخصی نداشت و زن و همسری هم اختیار نکرده بود که دغدغه دخل و خرج زندگی را داشته باشد و همین دلیل با شاگردش که جوانکی بود دو نفری شهر به شهر و آبادی به آبادی را رازی پا می گذاشتند، نان بخور و نمیری در می‌آوردند و چرخ زندگیشان را میشن خوندند. روزی از روزها این دو نفر همونطور که میرفتند به پایتخت رسیدند اتفاقا سر به سلطان و آن ولایت و وزیران و وکیلان او که با خدمه هشم و بسیار و دبدبه و کپکبه فراوان از جلوی بازار شهر میگذشتند برخوردند شاگرد این مرد یعنی همون جوانکی که گفتیم یک دفعه به خاطرش رسید جلوی سلطان کاری بکند و چیزی بگوید تا شاید به صاحب چند سکه‌ای بشود این بود که با عجله جلو رفت و سلام کرد و بعد از تعظیم بلندبالایی شروع به خواندن چند به چهری که از استادش یاد گرفته بود کرد در حال خواندن شعر هم چند بار دست و را گم کرد و بیتهای شعر را جا, به جا و به اصطلاق قراقاتی خواند سلطان که از غذا از حرکات و ادا و جوانک خوشش آمده بود خوندهای کرد و به وزیرش گفت ای پر از سکه به جوانک بدهد جوانک هم که سر از پا نمی‌شناخت. کیسه زر را گرفت و با عجله از سر راه سلطان و اطرافیان او دور شد و به عسارش من دو قباز وقتی این وضع را دید و به آن شعرهایی که از زبان شاگردش شنیده بود فکر کرد، با خودش گفت وقتی شاگرد من شعر مرا آنطور بی‌سر و تخر خواند و سلطان را مسرور کرد، حالا اگر خودم شعر را بخوانم، آن وقت دیگر سلطان و برگرد، به من دو کیسه زر خواهد داد. با این فکر به خانه رفت و دو سه روزی را در هیجان گذراند. روز دیگر که حقباز با شاگردش از بازار رد می شدند سلطان و اطرافیان او را دیدند مرد جلو رفت و تعظیم کرد و شیرش را خواند از غذا سلطان آن روز عصبانی بود و نه تنها از شعرهای مرد خوشش نیامد بلکه بیشتر عصبانی شد و دستور داد او را به شدت تنبیه کنند در یک چشم هم زدن شمشیرداران سلطان به سرفرستی وزیر دسته راست مرد را گرفتند و بردند تا او را تنبیه کنند. مرد اقباز رو وزیر کرد و گفت اگه مانع تنبیه من بشی میتونم خدمتی در حق سلطان کنم. طوری که سلطان خوشش بیاد و تا هم عزیز و بزرگ دربار بشی. وزیر راست که همیشه با وزیر دست چپ درگیر بود و با هم دیگر مثل کارد و پنیر بودند دستور داد مرد را تنبیه نکنند. وقتی شمشیرداران کنار رفتند از مرد پرسید خب بگو ببینم چه کاری میتوانی بکنی؟ حقباز گفت درستش من میتونم برای سلطان کلاهی درست کنم که لنگه نداشته باشه یعنی کلاهی که دزدان نتونن اون رو ببینن وزیر خوشش آمد و بلافاصله مرد را نزد سلطان برد سلطان هم از کلاه عجیبی که مرد میگفت خوشش آمد و دستور داد مواد دا اولیه کلاه را به همراه یک کیسه زر در اختیار او بگذارند بعد هم قرار شد مرد را در دربار نگه دارند تا همانجا به ساختن کلاه مشغول باشد چند روزی گذشت و مرد بهاز در دربار سلطان میخورد و می خوابید و لذت برد. در همین حال خود را در یکی از اتاقهای دربار مشغول کار بر روی کلاه نشان میداد. سلطان دائم از وزیر دستراست سراغ کلاه را می گرفت. به همین دلیل وزیر دستست یک روز خدمتکارش را فرستاد که ببیند مرد در چه است. خدمتکار وارد اتاق شد اما کلاهی ندید. رو به مرد کرد و گفت چه می کواه سلطان کجاست؟ حقباز باز دستایش را بالا آورد و گفت: "مگه نمی بینی دارممونو تموم میکن. خدمتکار گفت من که چیزی نمی بینم؟ حقباز با صدای بلند و تعجرامیز پرسید: نمی بینی خدمتکاری بیچاره یک دفعه به یاد آورد که یکی از خاصیتهای این کلاه آن است که دستانه می توانند آن را ببینند. پس خیلی زود و با عاشرخواهی و ترس از اینکه مبادا به او تهمت دز بودن بزنند گفت، ولی بله ولی بله واقعا چه کلاه زیبایی دستتون در نکنه واقعا که بی نذیره. بعد هم به سرعت رفت و به وزیر دستراز گفت که کلاه در حال آماده شدم است و الحق که کلاهی بینظیر و رو دیدنی است وزیر دسته که از تعریف‌های خدمتکارش خدمت برای کلاه سر شوق آمده بود با شتاب به اتاق معد رفت و سراغ کلاه را گرفت. حقباز در حالی که دستایش را همینطوری جابجا میکرد و تکان میداد گفت: قربان دیگه چیزی نمونده تموم بشه همونطور که مشاهده میکنید واقعا کار بین از آب در اومده و خودم باور نمیکردم این کلاه اینقدر زیبا و دیدنی بشه. وزیر دسته هم که می به او اومده دزد بودن بزنند، شروع کرد به تعریف و تمجید از کلا و چند بار هم به مرد خسته نواشی گفت. بعد هم وقتی به وزیر دست چپ رسید شروع کرد به تعریف از کلایی که مرد داشت برای سلطان میساخت. وزیر دست چپ که نمیخواست از قافل عقب بماند اول رفت سراغ مرد و از کلایی که نمیدیدش تعریف و تمجید فراوانی کرد و بعد هم پیش دستی کرد رفت سراغ سلطان و با آب و تاب از کلایی که مرد در حال آن بود گفت. سلطان که دیگر تحملش تمام شده بود به وزیر دست دستور داد که کلاه باید تا فردای آن روز حاضر باشد وگرنه هم آن مرد و هم او را به شدت تنبیه خواهد کرد. وزیر دست به سراغ مرد رفت و ماجره را گفت. حقباز هم از او یک بقچه حریر خواست و گفت فردا کلاه حاضر است. باید آن را لایه حریر بپیچید و برای سلطان ببرید. فردای آن روز، سلطان بر تخت نشسته بود که وزیر دست راست بقچهٔ حریر به دست وارد تالار قصر شد سلطان با دیدن بقچهٔ حریر گل از گلش گفت و چشم انتظار ماند تا وزیر گره بقچه را باز کند و چشم او به دیدن کلاهی بینظیر روشن شود بالاخره هم انتظار به سر رسید و وزیر بقچه را باز کرد سلطان از دیدن بقچه خالی نزدیک بود از ترس و تعجب از روی تخت به پایین پرد شود ولی با شنیدن صدای تحسین دو وزیر و اطرافیان آنها لب به سخن باز نکرد و منتظر ماند تا وزیر کلاه را بر سر او بگذارد وزیر دست راست جلو آمد و مثل اینکه واقعا کلاهی وجود داشته باشد آن را برداشت و بر سر سلطان گذاشت درباریان باریان دست زدند و بهبه و چهجه گفتند سلطانی بیچاره که روی سر خودش حتی سنگینی پر را هم احساس نمیکرد دلنگران و غمگین بود که چرا بقیه کلاه را بینند؟ و او از دیدن آن محروم است. بعد از ترس این که با و اطرافیان به او تهمت دوز بودن بزنند حرفی نزد و همه را مرخص کرد وقتی همه رفتند سلطان یکی از دانشمندان مملکت را فوری هزار کرد و از او خواست تا درباره این قضیه تحقیقی کند و ماجرا را به او بگوید دانشمند که اشیار و دانا بود گفت فردا خدمت میرسه فردای آن روز، مرد دانشمند که با چند نفر و از جمله خود مرد کلاسات صحبتهایی کرده بود نزد سلطان آمد و گفت: قربان كلاهساز را بخواهید و جلو من دستور دهید تنش جدا کنند اما وقتی من گفتم او را ببخشید دستور دهید کاری به کارش نداشته باشند. فردای آن روز سلطان کلاسات را هزار کرد و دستور داد سر از بدنش جدا کنند به بما آنکه شمشیرداران خواستند کارشان را آغاز کنند مرد دانشمند گفت دست نگه دارید سلطان دستور داد دست نگه دارند دانشمند رو به گفت اگر اصل ماجرا را بگویی من قول می دهم آزادت کنند مرد و قباز که به حرف دانشمند ایمان داشت اصل ماجرا را تعریف کرد و گفت از ترس تنبیه سلطان این کلک را زده است ژاک که به شدت عصبانی شده بود به نصیحت مرد دانشمند مرد و قباز را بخشید اما دور از چشم دانشمند او را پیش خود خواند و گفت تو از این پس مشاور من هستی همینجا جا و در مسائل و مشکلات یاورم باش از آن پس سلطان با کمک مرد و قباز می میتوانه سر مردم شهرش کلاه بگذارد و حق و حقوقشان را بالا بکشد تا روزی که خشم خداوند تومار حاکمیت او را در هم بیچند